اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الطور به نام بخشنده بخشایشگر سوگند به کوه طور و و کتابی که نوشته شده در صفحه ای گسترده و سوگند به بیت المعمور و سقف المرفوع و سقف برفراشته و دریای مملو و برفروخته این عذاب که عذاب پروردگارت واقع می شود ما له من دافع. و چیزی از آن مانع نخواهد بود تمور مورا. این عذاب الهی در آن است که آسمان به شدت به حرکت در می آگد واکوها از جا کند و متحرک میشوند وای در آن روز بر تکذیب کنندگان الذين هم في همانها که در سخنان باطل به بازی مشغولند یا او مدهون إلى نریجون ن آن روز که آنها را به زور به سوی آتش دوزخ میرانند از این نارلت قتونبیتون كذزیبون به آنها میگویند: این همان آتشی است که آن را انکار میکردید. آیا هذا أم أنتم لا تبصرون آیا این سهر است يا شما نمی بینید اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون در آن وارد شوید و بسوزید میخواهید صبر کنید یا نکنید برای شما یکسان است چرا که تنها به اعمالتان جزا داده میشوید این المتقین فی جنات و نعیم ولی پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و های فراوان جای دارند فاکرین بما آتاهم ربهم, ربهم پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند گون و اشربوا تعملون به آنها گفته می‌شود بخورید و بیاشامید گوارا اینها در برابر اعمالیست است که انجام میدادید مدک این عوریم نصوف این در حالی که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه میزنند و حور عین را به همسری آنها در می آفریم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا الحقنا بهم ذريتهم ومن آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين کسانی <سؤال> که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می‌کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی و هر کس در گروه اعمال خیش است و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می گذاریم لا ولا آنها در بهشت جامهای پر از شراب تهور را که نه بیهود در آن است و نه گناه از یکدیگر میگیرند می گیرند و یطوف علیهم غلمان لهم که مکنون و پیوسته برگردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدف‌اند در این هنگام رو به دیگر کرده از گذشته سؤال می‌نمایند في أهلنا می ما در میان خانواده خود ترسان بودیم مبادا گناهان آنها دامن ما را بگیرد فمن الله علينا عذاب السموم. اما خداوند بر ما منت نهاد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد. اناکن ما من قبل هو البر ما از پیش او را می‌خواندیم و میپرستیدیم که اوست نیکوکار و مهربان ف ذکر فما آت من عمت ربک بکاهیلی و لا مجنون. پس تذکرده که بلط پروردگارت تو كاهن و مجنون نیستی. ام يقولون شاعر ترّبص به ريب المنون. بلکه آنها میگویند او شاعری است که ما انتظار مرگش را میکشیم. قلت من المتربصین. بگو انتظار بکشید که من هم با شما انتظار میکشم شما انتظار مرگ مرا و من انتظار نابودی شما را با عذاب الهی ام تأمرهم احلامهم بهذا؟ ام هم قوم آیا عقلهایشان آنها را به این اعمال دستور می دهد؟ یا قومی تکیان گرند ام یقونون تقوله بل لا یؤمنون یا میگویند قرآن را به خدا افترا بسته ولی آنان ایمان ندارند فَلْيَعْدُو بِحَنِيثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ اگر راست میگویند سخنی همانند آن بیاورند ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون یا آنها بی هیچ آفریده شده اند. یا خود خالق خیشند ام خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون آیا آنها آسمان ها و زمین را آفریده اند؟ بلکه آنها جویای یقین نیستند ام, عندهم ربك ام هم آیا خزائن پروردگارت نزد آنهاست؟ یا بر همه چیز عالم سیطره دارند؟ ام لهم مبین. آیا نردبانی دارند که به آسمان بالا می روند و به وسیله آن اسرار وحی را می شنوند؟ کسی که از آنها این ادعا را دارد دلیل روشنی بیاورد؟ ام آیا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران؟ که فرشتگان را دختران خدا مینامید ام اجرا فهم مغرم آیا تو از آنها پاداشی می که در زیر بار گران آن قرار دارند ام عندهم الغیب فهم آیا اسرار قید نزد آنهاست و از روی آن می نویسند ام يريدون كيدا فالذین كفروا هم المكیدون. آیا میخواهند نقشه شیطانی برای تو بکشند ولی بدانند خود کافران در دام این نخشه ها گرفتار میشوند. ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون یا معبودی غیر خداوند دارند که قول یاری به آنها داده منظه است خدا از آنچه همتای او قرار می دهند و این کسفا من السماء يقولو يقولو آنها چنان لجوجند که اگر ببینند قطعه سنگی از آسمان برای عذابشان سقوط می‌کند میگویند این ابر متراکه است. سَئَدَرُهُمْ حال که چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند. روزی که نقشه‌های آنان سودی به حالشان نخواهد داشت و یاری نمی‌شوند و این للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولكن اكثرهم لا يعلمون فبرای ستمگران عذابی قبل از آن است در همین جهان ولی بیشترشان نمیدانند. وصبر لحکم ربک فانک باعیننا وسبح بحمد ربی که حین تقوم در راه ابلاغ حکم پروردگارت سبر و استقامت کن چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری و هنگامی که برمیخیزی پروردگارت را تسبیح و حمد گوی و من اللیل فسبح و ادبار همچنین به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پوشت کردن ستارگان و طلوع صبح